سلام دوستان همراه کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصاتش ذکر شد داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام دختری که وانمود میکرد پسر است یکی بود یکی نبود امپراتوری زندگی میکرد که از کشورگشایان بزرگ بود اون بر تعداد زیادی از سرزمینهای این جهان حکومت میکرد هرگاه قلم پادشاهی و به تصرف در آورد، به یه شرط صلح و به اون سرزمین باز می‌گردوند. شرطش این بود که پادشاه یکی از پسراش را به مدت ده سال برای خدمتگذاری به دربارش بفرسته. در مرزهای قلم سلطنتی جدیدی که تصرف کرده بود، سرزمینی قرار داشت که پادشاهش در شجاعت، چون امپراتور زبان زد بود اون تو جوانی پیروزمنده هر میدون نبرد بود سالها میگذشتن و تنها چیزی که پادشاه به اون میاندیشید کشیدن نقشه جنگ بود اما رعایاش میخواستن تو صلح به سر ببرن و روی زمیناشون کشاورزی کنن خود پادشاه هم به این نتیجه رسید که در برابر امپراتور کوتاه بیاد البته موضوعی اونا از رویارویی با امپراتور باز می داشت. امپراتور کشورگوشا خواسته ای داشت و اون خدمتگذاری پسر پادشاه شکست خورده در دربارش بود. اما پادشاه سال خورده پسر نداشت. اون صاحب سه دختر بود. پادشاه که تو کار خود مونده بود روز به روز اندوهگین تر می شد. طوری که دختراش نگران شدن و دست به هر کاری می زدن تا شادمانی پدر و فراهم سازن. اما تموم کاراشون بیفایده بود. سرانجام روزی موقعی که همگی داشتن شام میخوردن، دختر بزرگتر به خود دل و جرعتی داد و از پدر پرسید پدر چه مسئلهی شما رو اینقدر ناراحت کرده؟ آیا رو آیا در رنج و سختی به سر یا ما باعث ناخشنودیتون شدیم؟ برای زدودن ها و اندوهتون از دل با تمام وجودمون آماده ایم که جونمونو فدای زندگیتون کنیم. میدونید که زندگیمون تو دستتون و به وجود شما وابست است. پادشاه جواب داد دخترانم اون چه میگید درسته اما شما حتی لحظه ای باعث دلازوردگی من نشدید. اینک نمیتونید به من کمک کنید. افسوس، ای کاش یکی از شما پسر بود. دختر بزرگ با تعجب گفت: در نمیارم، به ما بگید چی شده. اگر چه پسر نیستیم، اما بیفایده هم نیستیم. پادشاه گفت: اما چی میتونید بکنید؟ جز ریسیدن، دوختن و بافتن در باقی این کارا تمام چیزایی که یاد گرفتید. الان فقط یه به دردم میخوره. جوون تنومندی که با قدرتش بتونه تبرزین و به کار گیره. کسی که شمشیره زربات مرگ بارد داشته باشه. اما چرا الان به چنین پسری نیاز دارید؟ هرچی هست به ما بگید. اگه بدونیم وضع که از این بدتر نمیشه. پس دخترانم گوش کنید و پی به علت غم و غه هم ببرید. میدونید تا زمانی که جوونو در اوج قدرت بودم کسی جعت شگرکششی و سفارایی در برابرمو نداشت. اگه چنین میکرد براش گرون تموم می شد. اما روزگار گرمای خونم و گرفت و توانمو فرو کشید. اینک که آهوها تو جنگل میخرامند، تیرهام به دلشون کارگر نمی‌افته. سربازای بیگانه خونههامونو به آتش میکشن و اسباشون آب چاهامونو نوشن و سپاهم نمیتونه مانعشون بشه آری دوران سربرین پایان یافته و اینک زمان اون رسیده تا در برابر دشمنم سر فرود آورم اما چه کسی حاضر ده سال به خدمت امپراتور در بیاد؟ این سهم بازنده است که باید بپردازه. بزرگترین دختر از جا پرید و فریاد زد من آمادم. و پدر غمگینانه سرش را تکان داد. دختر با فافشاری گفت طوری عمل می کنم که شرمنده نشی. بزار برم. آیا شاه دخت نیستم؟ آیا دختر شما نیستم؟ پدر گفت حالا که آماده ای پس برو. چیزی نمونده بود که قلب دختر شجاع از شدت شادمانی از تفش بیسته. اون رفت تا وسایلش را آماده کنه و لحظه بیکار نموند. تموم اتاقای قصر رو گشت و تموم صندوقچه ها و گنجینه ها رو زیرو رو کرد. برای یه سال وسایل کافی جمع کرد. نباسای سوزندوزی شده با طلا و سنگای قیمتی و انواع لوازم ضروری. بعد اسب اسبو که از چشماش آتیش میبارید و پوستش مثل نقره می انتخاب کرد. پدر با دیدن دخترش سوار بر اسب، اسبی با پاهای پرران در هوا تصمیم گرفت تا چند پند بش بده و توصیه هایی بکنه. پس به اون گفت که چطور مثل پسری جوان رفتار کنه و چگونه مثل دختر که واقعا چنین بود رفتار نکنه. بعد دعای خیر بدرقه راهش کرد و با ضربه یک کف دست اسب و هی کرد. برق ذره نقرعی خود پوست نقرعی اسب چشمای مردم و میزد. خیلی زود از دیده همگان ناپدید شد و پس از پیمودن مسافتی همراهاش رو مرخص کرد و بقیه راه سفر رو تنها ادامه داد. پادشاه پیر از ترفنده جادوگری آگاه بود، و نقشه تو سر داشت و هیچی ایک از دختراش نمیدونستند نمی دونستن. اون بیان که دیده بشه از دخترش پیشی گرفت و برای گذر فرزندش پلی مسی بر رودی که جاری بود کشید. بعد خودشو به گرک تبدیل کرد و زیر یکی از تاغای پول به انتظار نشست. اون کاراشو به موقع و سر فرصت انجام داد. به طوری که نیم ساعت بعد صدای سم اسب شنیده شد. تقریبا اسب روی پل سم می که گرگ بزرگ خاکستری با برخ کشیدن دندونای تیزش مقابل شاهدخت ظاهر شد. گرگ با قرشی کشدار که خون و تو رگا می خوش کند خودشو برای جهیدن بر سر شاهدخت آماده کرد. گرگ چنان ناگهانید برابر شاه دخت ظاهر شد که چیزی نمونده بود دختر بیچاره غالب توهی کنه یا فکر فرار به سرش راه یابه. اما اسب دست بکار شد و با خشونت به یه طرف جهش کرد. سوار افسار و گردند و اسب با سرعت بسیار پیش دوید. دختر تا موقعی که به دروازه های قصب نرسید افسار را, را نکشید. پادشاه پیر که سر فرصت بازگشته بود برای دیدار دخترش به کنار دروازه اومد و با دست کشیدن بر پر گفت فرزندم، نگفته بودم که فرار چندان شیرین و دلچسب نیست. روزها میگذشتم. یه روز صبح شاه دخت دوم به پدرش التماس کرد تا اجازه بده اون نیز پا به میدون بذاره و شکست خواهرش رو جبران کنه پدر با بیمیلی حرفاش رو گوش کرد اون می دونست که از دست این دخترش هم کاری برنمیاد. اما دختر اونقدر التماس کرد که پدر سرانجام رضایت داد اونم زره پوشید و سوار بر اسب رحس پار شد اما اگرچه اون برخلاف خواهرش کاملا آماده روی روی با گرگ شده بود همین که به پل مستی رسید و چشمش به گرگ افتاد نتونست دل و جرعت خودشو جمع کنه. پس انان اصبو کشید و با سرعت تمام به سوی قصر بازگشت. پدر روی پله های قصر ریستاده بود. دختر که هنوز از ترس حیبت گرگ چار ستون بدنش می درزید به پای پدر افتاد. پدر به آرومی گفت پرزندم، نگفته بودم که هر پرنده ای به هر دامی نمیفته. سه شاه مدتی تو قصر موندن. اونا سوزندو ریسندگی سندگی و با فندگی و به پرنده ها و گلاشون می رسیدن. یه روز صبح کچیکترین دختر پا به اتاق مخصوص پدر گذاشت و گفت پدرم اینک نوبت منه شاید من بهتر از پس گرگ بر بیان. پادشاه گفت چی؟ فکر میکنی از دو خواهر دیگت شجا خیال باطله تو حتی نمیتونی از پس کارای شخصیت بر بیای. اما اون توجهی به خنده های پدرش نکرد و گفت پدر به جانت قسم میخورم که گرگ هیولا رو از پادر رو و تک کش کنم احساس میکنم از پس این کار بر میا. اگه شکست خوردم بی اون که از دو خواهر دیگم شرمنده باشم باز می گردم. پادشاه کمی درنگ کرد. اما دختر اونقدر ناز پترو کشید تا سر انجام گفت باشه بسیار خوب. اگه میخوای بری برو. ظاهرا چارایی ندارم. اما بدم نمیاد که با سر فرو افکنده بازگردی و منم کمی بخندم. شاه دخت گفت شاهنامه آخرش خوشه. دختر خوشحال از اینکه که میتونه پی این کارو بگیره قبل از هر کاری تصمیم گرفت فردی دانا و ریش سفید و پیدا کنه تا از راهنماییش بهره ببره. کار بعدیش این بود که اسبی بینظیر انتخاب کنه. پس فرن به تبیده رفت. در اونجا زیباترین اسبای پادشاه در آقل خودشون نگهداری می شدن. اما هیچ کدوم از اسبا به کار اون نمی خوردن. نمیدانه به آخرین آقل طویله سر زد اونجا اسب جنگیه پدرش نگهداری میشد اسبی پیر و خسته همانند پدرش که روی دست ای قمگین و دلخورد دراز کشیده بود اشک تو چشای دختر جمع شد خیره به اسب نگریست اسب سر بلند کرد شیههی آرون کشید و آهسته گفت بنظر دلسوز و مهربون میای اما میدونم از عشق به پدرته که اینگونه با من مهربونی آه اون عجب جنگاوری بود و ما چه اوقات خوشی با هم داشتیم اما حالا که پیر شدم فراموشم کرده دیگه برای کسی مهم نیست که پوستم تیر است یا برراغ اما هنوزم دیر نشده اگه کسی فقط یه هفته به من برسه هیچ اسبی نمیتونه به گرد پام برسه. دختر پرسید: "چیکار باید برات بکنم؟" و اسب پاسخ داد: "باید هر صبح و هر غروب با آب بارون بدنم و شست و شو بدی. چون دندونای خوبی ندارم، باید جو با شیر مخلوط کنی و بپزی. هر روز باید پاهامو روغن بمالی." بسیار خوب، به امتحانش می‌ارزه. اما کاری سخت در پشت دارم و تو باید یاریم بدی. با گرامی سعیه تو بکن. قول میدم که پشیمون نمیشی. یه هفته گذشت. یه روز صبح اسب با تکانی ناگهانی از جا برخاست. تموم اندامش به لرزه در اومدن. بر اثر مراقبت یک هفته یه شاه دخت پوستش مثل آینه شده بود و برق میزد. بدنش مثل هندونه گوشت رو بود. مثل بوز کوهی چابک شده بود. صبح زود که شاه دخت به استبلومت اسب شادمانه به اون گفت باشد که درهای پیروزی و موفقیت به روی دختر سرورم گشوده گردد. او زندگی دوباره به من داد. حالا شاه دخت بگو از من چی میخوای تا انجامش بدم میخوام به درباره امپراتوری که اینک بر ما فرمان میرونه برم. کسی هم ندارم که راهنماییم کنه. کدوم یک از ریشسفیدای دانا رو باید به عنوان مشاور انتخاب کنم؟ اگه منو داشته باشی به کس دیگه این نیاز نداری. همان گونه که به پدرت خدمت کردم به تو نیز خدمت میکنم. فقط به اون چه میگم گوش کن. هرچی بگی سرتاپا گوش خواهم بود آیا میتونیم ظرف سه روز آینده دست بکارشیم؟ اسب گفت اگه بخوای همین الان آمادم وسایل سفر کوچکترین دختر پادشاه بسیار ساده‌تر از دو خواهر دیگش بود اون چند دست لباس پسرونه مقدار کمی پارچه کتان و کمی غذا برداشت برای مواقع ضروری هم مقداری پول تهیه کرد. اون از پدرش خداافظی کرد و سوار بر اسب به راه افتاد. پس از سفر یک روزه به پل مسی رسید. اما پیش از اون که پا روی پل بذاره اسب که از طررفندای جادویی با خبر بود اونو آگاه ساخت که پدرش برای سنجیدن شجاعت اون دست به کارایی میزنه. با اون که عصب اونو آگاه ساخته بود، با دیدن گرگ بزرگ لرزه بر اندامش افتاد. گرگ که پنجه هایی چون اره و دهانی به پهنای دهانه تنور داشت، زوزکشون به سویش ریورش برد. لحظه قلبش از تپه ایستاد اما به خود اومد، اسب اسبوههی کرد، شمشیر از غلاف کشید و آماده فرو افکندن کندن سر گرگ با یه ضربه کاری شد. جونور وحشی با دیدن برق شمشی رقب جست و این بهترین کار براش بود. حالا خون تو رقای دختر به جوش اومد و با چشمایی باز آماده نبرد شد. بعد بی اون که به اطراف نگاهی بندازه به سرعت از روی پل گذشت. پادشاه که از نخستین پیروزی دخترش به خود میبالید بالید می زد و در پایان روز دوم سفر نزدیک رودخونهی که بر روش پلی نقرهی کشیده بود به انتظار نشست. اون اینبار بار خودشا به شکل شیر درآورده بود. اسب که موقعیت جدید و حد زده بود به شاه دخت گفت چگونه از معرکه که بگذره. اما موقعی که ترس و واهمه نداریم پند و اندرس پیشمون جایگاهی نداره و وقتی خطری هراسناک ما رو میکنه میکن و در کمینه تازه به یاد راه های دیگران می افتیم. تا زمانی که تو ورطه خطر نیفتیم قدر آفیت رو اگه گرک باعث شد که لرزه بر اندام شاه دخت بیفته با دیدن شیر ترسناک مثل برره شده بود. شیر نرهی سرداد که درختا به لرزه در اومدن. به قدری بزرگ بودن که هر پنجهش مثل یه دشنه بود. نفس تو سینه شاه دخت بند اومد و پاهاش تو رکاب به لرزه افتادن ناگهان چیزی به سرعت برق به یادش اومد گرگ با دیدن برق شمشیر گریخته بود پس این بارم شمشیر و بیرون کشید و با به حرکت در به چپ و راست به سوی شیر قرران یورش برد وقت شیر بلند بود که تونست به موقع به کناری به جهه و خودش از ضربه شمشیر دور سازه دخترم از این فرصت استفاده کرد و به سرعت از پل گذشت در طول زندگی شاه دخت با مراقبت زیاد پرورش یافته بود اون حتی از باغ قصر خارج نشده بود بنابراین منظره تپه ها و دره ها و رودای جاری آبای چکا و و ها سبب سرخوشی و شگفتیش شده بود دلش میخواست از اسب فرود بیاد و سر و, روش و تو آب زلال آبگیره بشویه و گلای شادابو بچینه. اما اسب به اون هشدار داد و گفت نه، اصلا فکرش را هم نکن و بی اون که به راست و شب نگاه کنه بر سرعت خود افسود. اسب به اون گفت جنگجوها فقط موقعی استراحت میکنن که پیروز شن. تو هنوز معرکه دیگهای پیش رو داری که از بقیه سخت تره. این بار نه از گرد خبری بود و نه از شیر که سر راهش کمین کرده باشه. در پایان روز سوم اجدهای دوازده سر و پلی طلایی در انتظارش بود. شاه دخت بیان که چیزی ببینه و بترسه به راهش ادامه داد که ناگهان پفی از دود و آتش از کنارش گذشت. نگاهی به پایین انداخت و موجود وحشت و با دوازده سر دید که قرآن و قروشان، چرخان و پیچان به سوش میومد تا اونو تو چنگ بگیره انان از دستش رها شد دستش اونقدر میلرزید که نتونست چمشیر از نیام بیرون بکشه اما اسب بر سر شیههای کشید و گفت از چیزی نهراسه اسب اونقدر بر سر شیهه کشید و به اون دل و جرئت داد تا اینکه شاهتخت به خود اومد و با حی کردن اسب یه راست به طرف اژدهها رفت میونه اونا نبردی در گرفت که یه ساعت طول کشید. اجدهها راه برون بسته بود اما بالاخره سوار با ضررب حساب شده که به موقع از یه جانب فرود و ورد یکی از سرای اجدهها را انداخت. چنان قرشی از اون برخاست که به نظر میرسید آسمان دونیمه شده. اجدهها از پشت روی زمین افتاد و از درونش مردی بیرون اومد. و اینکه اسب شاه دختر و آگاه کرده بود که گرگ، شیر و اجدها در واقع پدرشه دختر اصلا باورش نمیشد اون مات و مبهوت به این دیگر خیره شده بود پدر از سمیم قلب فرزندش در آغوش گرفت و گفت حالا خیالم راحت شد تو دلیرترین دلیران و داناترین دانایان هستی برای کارت اسب درست و انتخاب کردی چون که بدون کمک اون کاری از پیش نمیبردی و با سر افکنده و چشمان فرو دوخته به زمین باز میگشتی. در من این امید و زنده کردی که کارتو با موفقیت انجام میدی. اما هیچ کدوم از توصیهها فراموش نکن و مهمتر از همه به حرفای اسب به دقت گوش کن. پس از اینکه صحبت ها و توصیه های پادشاه به پایان رسید، دختر در برابر پدر زانو زد و از اون خواست تا براش دعای خیر کنه. بعد هر دو به راه خودشون رفتن. شاه دخت به تاخت رفت تا سرانجام به کوههایی رسید که سر به آسمان کشیده بودن. اونجا با دو کتوله که دو سال بود به طرز بیرحمانهی با هم میجنگیدن بیونکه بی اون که کمترین فایدهای برای هر کدومشون داشته باشه روبه رو به شد. همین که چشمشون به پسر جوان افتاد که دنبال ماجرا بود یکی از مبارزا فریاد زد فتفرون مرا از دست دشمنم خلاص کن اگه این کارو بکنی و که صداش از فاصله سه روز راه شنیده میشه به تو میدم دیگری فریاد براورد فتفرون رس. به من کمک کن تا بر این دزد کافر قلبه کنم اسبم آفتاب رو به تو خواهم داد. شاهدخت پیش از اون که حرفی بزنه با اسب مشورت کرد که کدوم پیشنهاد و بپذیره. اسب راهنمایش کرد که بهتره طرف کتوله صاحب اسب آفتاب رو بگیره چون که برادر کوچیک‌ترش و قبراق‌تر از خودشه. دختر فورا به سوی کتوله دیگه حمله برد و جونجمه‌شو در هم کوبید. کوتوله پیروز از اون دعوت کرد که به اقامتگاهش بیاد تا اسبش آفتاب و گونه که قول داده بود به اون بده مادر کوچولله از دیدن دوباره پسرش خیلی خوشحال شد و بهترین اتاق و برای شاه دخت که پس از اون همه خستگی به استراحتی جانانه نیاز داشت آماده کرد. دختر گفت که اول باید به اسبش برسه و جای راحتی در استبل براش درست کنه البته این بهونه ای بود تا با اسبش تنها بمونه و در مورد چند موضوع از اون سوال کنه. زن پیر، مادر همون کتوله پیروز، از همون اول شک کرده بود که اون پسر که باعث پیروزی فرزندش شده واقعا پسر نیست بلکه دختر و لباس مبدل پوشیده. پس به پسرش گفت که اون مناسبترین هم سر براش خواهد بود. به خندش گرفت و پرسید مگه میشه اون با اون ضربه شمشی رو با اون مهارت دختر باشه. اون قضیه رو جدی نگرفت. اما مادرش پافشاری کرد و برای اثبات نظر خودش شب روی هر بالش دسته گل جادویی گذاشت که با تماس مرد پژمرده میشدند. اما تو دستای زن تازه و شاداب باقی می موندند. این نشونه هوشیاری زن پیر بود اما از بخت بدش اسب اون رو در انتظار شاه دخت بود گوش زد کرد پس موقعی که همه جای خونه ساکت و آروم بود اون به آرومی وارد اتاق کتوله شد و گلای پژمرده رو به اتاق خودش بود بعد از این کار راحت دراز کشید و فوراً به خواب رفت با آغاز روشنایی روز زن پیر به دیدن مهمونش رفت و دست گل پژمرده رو تو دستاش دید. اون اصلا باورش نمیشد که مهمونش مرد باشه. دوباره با پسرش در این باره صحبت کرد. اونا فکراشون رو روی هم ریختن و نقشه دیگه کشیدن. پس از صرف صبحانه کتوله پسر دست مهمون رو گرفت و از اون خواست که همراهش به باغ بیاد. مدتی تو باغ گشتن و گلا رو تماشا کردن. در تمام این مدت کتوله پسر وادارش کرد هر گلیا که دوست داره بچینه. اما شاه دخت که فکر میکرد براش نقشه ای ریختن خیلی جدی گفت که چرا وقتشون بیهوده تو باغ میگذروند. مردا باید تو استبل باشن و از اسبا مراقبت کنند. کتوله پسر به مادرش گفت که کاملا در اشتباهه و نجات دهندش واقعا یه مرده. اما پیرزن قانع نمیشد. اون گفت یه بار دیگه هم امتحان میکنه. و از پسرش خواست که مهمنو به اسلحه خونه ببره. در اونجا انواع اسلحه که در سراسر سر جهان استفاده می‌شدن از دیواره آویخته بودند. بعضیا ساده و بعضیا هم بدون روکش بودن از شاهدخت خواستند یکی از اسلحه ها را انتخاب کنه. اون با دقت به سلاح ها نگاه کرد و لبه ها و نکای اونا رو بارسی کرد. بعد شمشیری قدیمی با لبه خمیده رو که به یه جنگجوی قدیمی تعلق داشت انتخاب کرد. کمی پس از این ماجرا، اون به کتوله پسر گفت که فردا صبح زود با آفتاب از اونجا خواهد رفت. دیگه بال کتوله مادر بسته شده بود و کاری نمیتونست بکنه. او قبول کرد که مهمونش پسر بود ندخته. البته قبول این مسئله واقعا براش مشکل بود. شاهدخت سباره آفتاب شد. با مهمیز به پهلواش زد و به راه افتاد. اسب پیر هم در کنارش حرکت میکرد. اسب ناگهان گفت سرورم تا این زمان با من مشورت کردی و به توصیه هم عمل نمودی. دیدی که همه چیزم به خوبی پیش رفت. من پیرم، الان هم یکی دیگه جامو گرفته اعتراف می کنم قدرت و توانم با توجه به کارایی که پیش رو داریم برابری نمیکنه. بزار به خونه برگردم تو میتونی با همراهی برادرم آفتاب به سفرت ادامه بدی همونجور جور که به من اعتماد کردی به اونم اعتماد کن و از این کار هرگز پشیمون نمیشی. آفتاب خیلی زود به دانایی و درایت دست یافته سبار گفت آری همراه قدیمی تو از هیچ کاری در حقم فروگذار نکردی. اگه کمکت نبود هرگز پیروزمند نبودم. برام بسیار دردناکه که از تو جدا بشم. این بار هم تابع فرمانت هستم و به اون چه برادرت آفتاب میگه گوش میدم. شاید با این کار اون هم دوستم داشته باشه. درست هم اون گونه که تو دوستم داری. آفتاب گفت چگونه میشه که تو رو دوست نداشته باشم مگر میشه از اینکه به جنگ چون تو خدمت میکنم به خود نبالم منو باور کن بانو من دشواری های سر راهمونو میشناسم و در کنار هم با اونا رو در رو خواهیم شد بعد با چشمایی پر از عشق شاه دخت از اسب قدیمیش جدا شد اسبم سربرگردون دو به طرف استبن پادشاه تا